پیرمرد خارکن این داستان از راهیل رحمانی از کلال نقل شده یکی بود یکی نبود غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود پیرمرد مرد خارکنی بود که سالها پیش همسرش فوت کرده بود و با تا دخترش زندگی می کردن. اون هر روز از کله سحر تا تنگ غروب، برای جمع کردن بوتهها به بیابون می رفت و بوته جمع می کرد و غروب به بازار می برد و می فروخت و به نوبت برای یکی از دختراش ای می خرید. یه روز که بوته ها را جمع کرده بود و می خواست اونا را بار چهارپا کنه دید یکی از بوتهها خیلی سنگینه. کمی بوته را این طرف و اون طرف کرد و دید ماری وسط بوته حلقه زده و راحت مار مارو کلای بوته ها دید از ترس لرزید و گفت ای مار خوش خط و خال مگه من در حق تو چه بدی کردم که اینطور منو عذیت میکنی؟ مار سرش رو بلند کرد و گفت ای پیر مرد خارکن من قصد عذیت تو رو ندارم فقط از تو تقاضایی دارم پیرمرد گفت چه تقاضایی مار گفت از تو میخوام که فردا موقع اومدن یکی از دخترات رو با خودت بیاری که با من زندگی کنه برای من فرقی نداره کدوم باشه هر کدوم رو بیاری قبول میکنم پیرمرد که ناراحت شده بود گفت چرا قصتازیت من رو داری من دلم به این دخترام خوشه چطور میتونم یکی از دخترا رو برای تو بیارم هرگز نمیتونم تقاضای تو رو به دختران بگم مار گفت پس دیگه نمیتونی بیای از اینجا بوته جمع کنی پیره مرد خارکن با دلی شکسته به بازار رفت و طبق معمول پس از فروش بوتهها گوشت و میوه و سبزی خرید و برای دختر کوچیکش یه رو سریه زیبا و گلدار خرید و به خونه برگشت. دخترها به پیشواز پدر اومدند و هر کدوم خسته نباشید گفتند. وسایل رو از پدر گرفتن و با خوشحالی سفره رو پهن کردند. پیرمرد پای سفره نشست ولی اصلا مثل روزای پیش خوشحال نبود و اشتهایی برای خوردن غذا نداشت. پیرمرد آهی کشید و به دختراش گفت دخترای عزیزم رخت خواب منو پند کنید میخوام برم بخوابم حالم اصلا خوب نیست دختران نگران شدن و از اون پرسیدن پدر عزیز چی شده به ما بگو شاید بتونیم برات کاری انجام بدیم پدر گفت عزیزان من غم بزرگی دارم که هیچ کس نمیتونه کمکم کنه من از فردا حتی کار ندارم نمیتونم برم به صحرا دیگه بیکار شدم دخترا دست از سر پدرشون بر نداشتن و خواهش کردند مشکلش رو برای اونا بگه پیرمرد که اصرار زیاد دختراش رو دید ماجرای ما رو تعریف کرد دختر اولی و دومی گفتن وای پدر چه مصیبت بزرگی اصلا باور کردنی نیست که یه مار همچین تقاضایی داشته باشه این کار هرگز شدنی نیست ولی دختر کوچیک گفت پدرجون من فردا با تو میام میخوام بدونم این مار چرا چنین حرفی را زده پدر گفت امکان نداره تو رو ببرم چند روز میگردم و یه کار دیگه پیدا میکنم ولی دختر کوچیک بلاخره پدر رو راضی کرد که فردا با هم به صحرا برن صبح دختر با پدر را افتاد و به صحرا رفت وقتی به صحرا رسیدن دیدن مار منتظره مار به دختر گفت بیا بریم دختر گفت من به شرطی با تو میام که بگییه مار چطور میتونه با یه انسان زندگی کنه مار گفت: ازت خواهش میکنم سوالی نپرس. اگر از زندگی با من راضی نبودی میتونی به خونه پدرت برگردی. دختر همراه مار را افتاد. در باز شد. بلا فاصله دو نفر جلوی در اومدن و خوش آمد گفتند و دختر را وارد باغ بزرگی کردند. باغ خیلی زیبا و بزرگ بود. قصر زیبایی وسط باغ قرار داشت. چند نفر خدمتکار مشغول کار بودند. مار دختر را به قصر برد و خودش پشت قصر رفت. دختر داخل قصر در حال گشت و گذار بود که جوانی زیبا وارد قصر شد. دختر متوجه شد که صدای مار و این جوان خیلی شبیه به همه. خواست سؤالی بپرسه که جوان گفت خوشبختت میکنم. به شرط اینکه از من هیچ سوالی نپرسی. فقط بدون که من همون مار هستم و روزا به شکل مار و شبها به شکل انسان در میام اگه کسی پوست مار من را آتیش بزنه من ناپدید میشم دختر قبول کرد راز مار رو پیش خودش نگه داره فردای اون روز مار نزد دختر اومد و گفت من میرم و نزدیک غروب برمیگردم نوکره ازت پذیرایی و مراقبت میکنند تو هم هر کاری که دوست داری رو انجام بده چون حالا تو صاحب این قصری دختر گفت میتونم برم برای دیدن پدر و خواهرام مار گفت خودم تو رو پیش پدرت میبرم اونا رو به قصر دعوت کن تا چند روزی پیش ما مهمون باشن ولی یادت باشه راز من رو پیش کسی فاش نکنی که عاقبت خوبی نداره دختر قبول کرد. مار دختر رو پیش پدر و خواهرش برد و دنبال کارش رفت. خواهرها با دیدن خواهر کوچیکشون گفتند وای خدای من معجزه شده که زنده است. ما فکر کردیم مار تو رو نیش زده و مردی. ولی حالا میبینیم زیباتر و شادابتر هم شدی. عجب لباس های خوشگل و گرانبهای پوشیدی. دختر گفت من از زندگیم خیلی راضیم. اومدم شما را هم به قصر خودم دعوت کنم تا چند روزی پیش ما بمونید. اونا قبول کردن و همراه خواهر کوچیک به قصر رفتن. پس از دو روز خواستن به خونه خودشون برگردند، مار به پیرمرد خارکن گفت: اگه مایل باشید، میتونید پیش ما زندگی کنید. اونا هم خوشحال شدن و پذیرفتن. ولی خواهر بزرگتر وقتی دید خواهر کوچیکش چقدر خوشبخته حسودیش گل کرد و گفت من باید بدونم این مار چطور خواهرم رو خوشبخت کرده یک روز از اون پرسید تو چرا خودت رو یه مار کردی تو که حالا همه چیز داری میتونی با کمک نوکرا از شر مار راحت بشی روز دیگه گفت از این قصر برو و جای دیگه زندگی کن تو حالا خیلی ثروتمندی و نیازی به اون مار نداری ولی دختر کوچیک چیزی نمی نمیگفت تا اینکه روزی به شوهرش گفت ما اشتباه کردیم از خونوادم خواستیم با ما زندگی کنن چون خواهرم آرامش من رو به هم زده مار گفت مبادا راز من رو فاش کنی من تلسم شدم اگه کسی راز من رو به فهم من ناپدید میشم دختر قول داد که خاطر باش من زندگی شیرین خودم رو هرگز به هم نمیزنم. ولی خواهر بزرگ بی خیال نشد مدام گفت: «من خواهر تو هستم من می خوام به تو کمک کنم. خلاصه اونقدر گفت و گفت تا دختر کوچیک چی که تو دلش بود رو به خواهرش گفت. خواهرش گفت: خب امشب وقتی شوهرت رفت لباسش رو عوض کنه ببین پوست مار رو کجا میذاره دختر کنج کاف شد و دید شوهرش پوست مار رو در گنجی بین لباس های پنهون کرد اون ماجرا رو به خواهرش گفت خواهرش گفت امشب من پوست مار رو بر میدارم و آتیش میزنم وقتی شوهرت پوستش رو پیدا نکنه مجبور میشه که با ظاهر انسانی زندگی کنه دختر هم فکر کرد و گفت احراس میگی واقعا عالیه همین که پوست مار را آتیش زدن مرد هراسون از خواب بیدار شد و گفت با من چه کردید؟ حالا مجبورید برای پیدا کردن من سالها با کفش و عصای آهنی بگردید مرد این رو گفت و ناپدید شد. همه پشیمون شدند ولی پشیمونی سودی نداشت. خواهر بزرگ گفت: ناراحت نباش، تو قصر بزرگ و به این زیبایی داری و این همه پیشخدمت و ثروت زیاد. ولی دختر کوچیک که از دست دادن همسرش ناراحتش کرده بود گفت: شوهرم رو دوست داشتم. باید پیداش کنم. این زندگی با تمام زیباییاش برام اصلا ارزشی نداره. دختر کوچیک پیش عالم دانایی رفت و از اون برای پیدا کردن شوهرش کمک خواست. مرد دانا گفت طبق گفته شوهرت کفش و عصای آهنی سفارش بده و برای پیدا کردنش دیار به دیار بگرد. شاید نشونی ازش پیدا کنی. هر وقت تو رو ببخشه و نشونی رو پیدا کنی تلسمش باطل میشه اون موقع تو و شوهرت به هم می رسید دختر گفت میرم و پیداش می کنم تا وقتی هم پیداش نکنم برنمیگردم. دختر کوچیک به راه افتاد شبها و روزها رفت شهر به شهر رو دیار به دیار گشت ولی اثری پیدا نکرد یه روز که خسته و ناتوان شده بود تکیه به درختی داد. فکر میکرد و میگفت من نمیدونم چند سال دنبال شوهرم میگردم ولی این رو میدونم که کف کفشای آهنیم خیلی نازک شده و نوک اصام از تیزی به زمین فرو میره. اون با این فکر تصمیم گرفت برای استراحت جایی پیدا کنه. رفت از ره نشونی کاروانسرایی رو گرفت رفت و اتاقی اجاره کرد شبا اونجا می و روزا جلوی کاروانسرا می نشست و رفت و آمد مسافرا رو تماشا می کرد توی کاروانسرا ادده کارشون آوردن آب برای مسافرا بود صبح که میشد پسر بچه های ظرفای آب رو می آوردن و به مشتری ها اون روز مردی از یکی از این بچه ها ظرف آبی خرید و انگشترش رو داخل اون انداخت. از غذای روزگار، دختر کوچیک آب رو با ظرف خرید. انگشتر رو دید و فهمید شوهرش زنده است و همین نزدیکی هاست. سه روز بعد دختر دوباره اون پسر رو دید: از اون پرسید: یادت هست اون ظرف آب را از کجا آورده بودی؟ پسر گفت: «یه مردی آب رو خرید و بعد از من خواست آب رو برای شما بیارم. دختر پرسید: « اون مرد رو می پسر جواب داد: «بله، مرد بسیار خوشنام و دست و دلبازیه. همه میشناسنش ولی غم بزرگی توی صورتش هست و با کسی حرف نمیزنه. دختر از پسر خواست تا اون رو پیش مرد ببره. وقتی مرد رو پیدا کردند، مرد گفت: فکر میکردم اشتباه کردم و ناامید شده بودم. چون منم مثل شما سالها در پی سرنوشتم آواره و سرگردون بودم. تا اینکه از سه سال پیش اینجا موندگار شدم. روزی که تو رو دیدم انگشترم رو فرستادم ولی خبری نشد. فکر کردم دیگه تو رو پیدا نمی کنم. دختر کوچیک گفت: من آرزوم این بود که تو رو پیدا کنم و از تو طلب عفو بخشش کنم. حالا که پیدا کردم تو همین شهر خونه برای خودمون پیدا می و به خوشی و سادگی کنار هم زندگی می تا باعث حسودی بقیه نشیم و به خوشبختیمون لطمه بزنن. من و تو خیلی سختی کشیدیم. دیگه حاضر نیستم لحظه ای ازت دور بشم. اونا سالهای سال به خوبی و خوشی کنار هم زندگی کردند